اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محضر امام سجاد علیه السلام هستیم با یک صلوات بحث رو شروع کنیم اللهم صل محمد و محمد ادامه دعای ششم رسیدیم به قسمت فقره 7 هم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آله واحفظنا من بين و ومن خلفنا وان يمنانا وان شمائلنا ومن جميع نواحینا حفظا आसما من معصيتك هاديا الى طاعتك مستعملا لمحبتك خدايا بر محمد و آل او از سوی ما سلوات بفرست و حفظ کن ما را از مقابل از پشت سر از سمت راست از سمت چپ و از همه نواهی ما را حفظ بفرما ابتدای این دعا دوباره سلوات بر محمد و آل محمد هست و این دوباره تأچید کننده همون مطلبی که ما در هیچ دعایی و در هیچ مسیری از دین بدون محمد و آل محمد حق نداریم قدم بگذاریم و اگر هم قدم بگذاریم فایده ای نداره حضرت مخواد بفرماد که مسائل اخلاقی هم از مسیر محمد و آل محمده شما اگر یه سری روایاتی داریم مثلا به عنوان نمونه چتابه اختیار رجال چشی رو اوایلش رو نگاه کنید یه 7 8 روایت در اونجا میاره مضمون مجموعه اونها این هست که ما حق نداریم به غیر شیعه مراجعه کنیم و مسیر فقط مسیر اهل بیت همه اینها رو چنان هم میذارید با این موارد انسان به این یقین میرسه که غیر شیعه راه خیری توش نیست هرچه هست مسیر محمد و محمد لذا این اصلا خطمش ما باشه ما هیچگاه هیچ مسئله اخلاقی رو از غیر بیت نباید بگیریم هیچ مسئله عقیدتی رو از آنها نباید بگیریم از دیگران نباید بگیریم و هرچه هست در این درب هست درب هیچ کس دیگری نباید بریم به انتظار این چه خیری به ما برسه هرچه خیر هست این جمله باید در داخل کادر نوشته بشه و در سینما حک بشه خیر هر چه هست فقط در محضر محمد و آل محمد است و در محضر دیگران هیچ چیزی نیست. اگر هم در دیگران چیزی باشه از اینها گرفتن. لذا ما هم از سمیم دل همین دعا رو با قصد انشاء دعا هم میگیم. میگیم اللهم صلی الله محمد و آله. بعد حضرت میفرماید که خدایا ما را از مقابل از پشت سر، از سمت راست و از سمت چپ و از همه جوانب ما را حفظ بفرما. حالا جالبه اگر شما سوری اعراف رو بخونید اون اوائلش رو ببینید اونجا آیه این هست. میگه که شیطان وقتی از بهشت رانده شد و خدا بهش فرصت داد. از خدا فرصت خواست خدا هم بهش فرصت داد. خب در قبال این که از این لطفی که خدا به شیطان کرد و به او فرصت داد شیطان بیاد تشکر کنه به گفت که فبما اغوی تنی لعقادن لهم سراتکن مستقیم حالا که خدایا تو منو گمراه کردی من هم بر سر راه بندگانت خواهم نشست سملا آتین نهم من بین عیدیه من سراغ بنده های تو خواهم رفت از مقابل و من خلفهم از پشت سر از سمت راست و از سمت چپ به سراغ بندگان تو خواهم رفت حالا اون رو در نظر بگیرید شیطان وعده داده قسم خورده این کار رو خواهد کرد برای شما ما رو گمراه کنه حالا امام سجاد میفهمند که خدایا. حالا تو ما رو حفظ بفرما از مقابل از پشت سر از سمت راست و از سمت چپ بسیار زیباست است. اومدن این دعا با اون. فایی شریفه 16 و 17 سوره اعراف هست و من جمیع نواهینا حضرت آخرش کل جوانب رو ذکر میکنم یعنی عام بعد از خاصه از هر جهتی ما را حفظ بفرما حالا چطور حفظی حفظا آس من من معصیتک منظور از حفظ اینه حفظی که ما رو از نافرمانی و اسیان تو نگه داره اصلا مهمترین چیزی که حضرات میخوان به ما یاد بدن اینه که و اولین درجه اصلا اینکه در مقام قربه الهی بخوایم قدم برداریم اولین کار چیه؟ دوری از معصیته لذا حضرت همین رو میفرماید حفظی که اولی چیزش اینه مرا از معصیت خداوند مطال حفظ کنه نگه داره حفظا آس من مرا در عصمت قرار بده از معصیت تو ای خدا هادیان الی طاعتک. گناه که نکردم در بعدی طاعت تو رو به انجام برسونم اطاعت کنم خدا را. و در مرحله بعدی مستعملن للمحبتک. حفظی که مرا بکار گیرد برای محبت خدا. این عبارت رو میشه جور دیگه هم خوند. ولی همینجور که خوندم من معنی میکنم. یعنی خدایا منو از هر طرف یه جوری حفظ کن گناه تو برنامه من نباشد اهل اطاعت تو باشم و همچنین محبت تو رو به کار ببرم یعنی من حب تو رو داشته باشم این در بیان اساسی اخلاق هم هست که حطوا و ترچه گناه و انجام واجبات الهی این پله اوله. این در واقع مقدمه است. برای اینکه انسان به مراحل بالاتر برسه. مراحل بالاتر. اگر یک انسان این دنیا رو زندگی کنه و به پایان برسونه با ترک گناه و انجام واجبات. این حالا به تعبیر من یه مقدار باس زرر هست. چرا؟ چون این دنیا رو خدا برای محبت اگر انسان خود... ای البته این دیگه پله بالاست دیگه این دیگه برای همه مردم متاسفانه نیست چون خودشون نمیخوان اگر میخواستند بهترین مقام همینه که خدایا ما در این دنیا به جایی برسیم که هیچ گناهی نداشته باشیم همه طاعات تو رو به جا باشیم و قلب ما از محبت تو پر شده باشه تو رو بخوایم همونطور که من نسبت به یک انسان مثل خودم محبت دارم بعضی وقت اصلا فکرم از او دور نمیشه. فرض کنه شخصی ایام نامزدیشه. فکرش پیش اوست، نمیتونه کار دیگری انجام بده. کار دیگرم اگرم انجام بده سریع میخواد انجام بده بره پیش او. هستن انسانهایی که در این دنیا با این مسیر ترچ گناه و انجام طاعت الهی به این مسیر میرسنن به این رتبه میرسن که محبت خدا در قلبشون هست کاراش رو اگر هم نفقی زن و بچه واجبه میخواد یه جوری سری اینو انجام بده بعد برپشه خدای خودش اگر درس خوندن واجبه درسشو بخونه بعد بره عبادت خدا رو انجام بده لذت میبره اگر هم درس میکنه به خاطر خدا دو انجام میده چه بگه خدایه ببین تو رو چقدر دوست دارم وظایف ما انجام میدم کارها ما انجام میدم بعد میام چه تو این تعابیر حضرت در این عبارت ها در این دعا ها تعابیر بسیار بالاییست است. خب چون ما خیلی باش سر و کار نداشتیم از این مزامین امیدار دور هستیم پس این یادمون باشه اینو حفظ کنیم اولا از خدا خواستیم از هر جهت ما را حفظ کنه شیطان که وعده داده از هر جهت به ما میخواد حمله کنه خدایا تو هم از هر جهت ما را حفظ کن این یک دو حفظی که اولا گناه ما را جلوشو بگیره ما را به اطاعت خدا وادار کنه و باعث بشه که ما به محبت الهی انشالله برسیم خدایا به حرمت امام سجاد علیه السلام این مزامین خیری که در دعا هست نسبت به ما هم برابرده بفرماه ببالتقدير على واتي محمد الله أجمعين على محمد وعلى محمد تقبل الله إن شاء الله قبل الرسالة.